بسم الله الرحمن الرحيم معرفوات را خاندين منصوبات را هم خاندين رسيده بدين ب در منصوبات بحثة تميز رخون دين الآن هم رسيدين ببحث مستثناء الاستثناء استثناء باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانیتون حروف استثناء میفرماید هشتا هستن گرچه بیشتر هستن یعنی هر هشتا روز ذکر کرده فقط که معروفترین و مهمترین ها هستن و هی از اللا و غیرون و سوا و سوا و سوا و خلا و عدا و حاشه. پس استثناء این هشت حرفش رو عداتش رو بیان کرده استثناء حروفش رو بیان کرده ادات دیگه ای داره بعضیاشو فعلا در لغت به معنی اخراج هست و در اصطلاح نحوی ها هم اخراج کردن به وسیله الا یا یکی از ادات استثناء دیگر از حکم مستثنامه شما میخواید مستثنا رو از حکم مستثنا من خارج کنید مانند جا طلاب الا زید شما رو از طلاب چیکار کردید به وسیله الا اخراج کرد این عدات استثناء بر سن و آن بعضیاشون همیشه حرف هستند مانند الا لو دوم که همیشه اسم هستند چهار تا هستن سوا، سوا، سوار و غیر اینا اسم هستن نوع سوم گاهن حرف هستن و گاهن فعل اگر اونا رو ما حرف در نظر بگیریم اعراب دیگهی دارد و اگر فعل در نظرشون بگیریم اعراب ای که خواهیم هاید فالمستثناء به الله ابتدا نخونم به وسیل الله رو فالمستثناء به الله یون منصوب میشه اذا كان الكلام تام من مستثنای که به وسیل الله هست منصوب هست زمانی که کلام تام و موجب باشه منظور از تام یعنی ناقص نباشه یعنی مستثنا منح ذکر شده باش اینجا دقت بفرمایید موقعی میگیم جا القوم الا زیدن در جا القوم الا زیدن مست... کلام ما تام هست چون مستثنا هست که قوم باشه ذکر هست زید ازش استثنا شده بهش میگن مستثنا جا القوم الا زیدن میگه اگر کلام تام باشه مثل همین مثالی که زنین موجب باشه یعنی منفی نباشه شبه منفی که همون نهی و استفخام هست نباشه در این حالت واجب هست که مستثنا منصوب باشه جا القوم إلا زیدان نحو قامل قال القوم قامه هست کتاب شو یه قاله آ نحو قامل قوم إلا قامه هست اینجا اشتواه چاپی هست آورده قال القوم الا زیدن انتو مشکلی نیست پس قام القوم الا زیدن اینجا کلام ما هم تامه چون مستثنا من ذکر هست و هم موجب منفی نیست نفی نیست استفاد هم نیست مثال دیگی آورده است خرج الناس الا عمران خرج فعل ماضی مبنی برفت الناسو فائلش مستثنا من هست الا عدات استثنا امران مستثنا منصوب این پس زمانی که کلام تام باشه اعراب مستثنا به حسیله الله چه هست؟ منصوب هست و این کان الکلام منفیا تام من. اگر کلام منفی و تام بود تام بود اما منفی بود جاز فیه البدل و علی علال استثناه. دو اعراب درش جایزه میتونیم اعراب بدل از مستثنا منه رو بش بدیم و می تانیم که منصوبش کنیم خاطر استثناء معنیم در همون مثال قبلی قام القوم الا زیدان اونجا فقط منصوب میتونستیم بکنیم حالا اگر بیان غیر موجبش کنیم منفیش کنیم میشه ما قام القوم الا زیدان یعنی ای را به بزید بینیم و میتونیم بگیم ما قام القوم الا زیدان دو اعراب میتونه بگیره اگر کلام تام بود من ذکر بود اما منفی بود در این حالت میتونیم اعراب بدل رو یعنی بدل از من. و میتونیم اعراب نصف به خاطر استثنام بشودیم و این کان کلام ناقصا کان على حسب الامل اگر کلام ناقص بود تام نبود مستثنه من ذکر نشده بود کانه على حسب العوامل اعراب مستثنا بر حسب عوامل هست مانند ده ما قام قول و ذکر نکنیم ما قام الا قامه چی نیاز داره فائل الا زیدون پس میشه ما ما قامه فعل مازی منفی زیدون همشه فائلش ما ضرب تو فعل با فائلش مفهول بهی نیاز داره الا زیدن ما مرد تو ایلا بزیده حرف جر پس مستثنا به وسیله ایلا سه حالت سه اعراب داره یک زمانی که نصب منصوبه فقط واجبه که منصوب باشه زمانی که کلام تام و موجب باشه دو زمانی که دو اعراب درش جایزه یعنی اعراب بدل و اعراب نصب زمانی که مستثنا تام هست اما منفیه سه بر حسب عامل. این زمانی هست که کلام ناقص باشه مستثنا من ذکر نشده باشه این خیلی بحث بسیار ساده‌ای بود و این حالت سومی که کلام ناقص باشه همیشه منفیه همیشه جنس منفی من هست این بود مستثنا به وسیله الا اما مستثنا به وسیله غیر و اخواتش به بسوا و سوا و سوائن و غیرن مجرورون میگه مستثنا به وسیله سوا و سوا و سواء و غیر مجرور است لا غير. نه چیز دیگه یعنی همیشه فقط چه هست؟ مجرور هست مانند قام القوم غیر زیدن قام القوم غیر زیدن خود مستثنا اعرابش چه هست؟ خود مستثنا اعرابش مجرور هست این نقطه رو در ذهن داشته باشیم خب یک کلمه دی... خود کلمه غیر رو چه اعرابی بودیم قام القوم غیر زید زید که مستثنا ما هست همیشه مجرور هست همیشه چه است چه با سوا چه با سوا چه با سوا چه با غیر؟ خود مستثنا که مجبوره ولی اعراب غیر رو در ذهن داشته باشیم که همون اعرابی رو که مستثنا به وسیله الا داشت الان غیر همون اعراب رو میگید مثلا اگر اینجا ما غیر رو برداریم میشه قام القومو الا زیدن اگر به جای الا غیر رو بیاریم اعراب زیدان رو به غیر میگیم خود زید رو مجرور میکنیم میگیم قام القومو غیر زیدن اگر منفی باشی دو اعراب میتونه بگیره ما قام القومو میتونیم بگیم غیر زیده میتونیم بگیم ما قام القوم غیر زیده یعنی اعراب بدل رو به غیر بدیم و اعراب استثناء رو اگر بر حسب عامل بود ما قام غیرو زیده ما رأیتو تو غیر زیدن ما مررتو تو به غیری زیده همون اعرابی رو که مستثنا به وسیله الا داشت کلمه غیر داره مستثنا به وسیله غیر که همیشه مجروره والمستثنا بعدا مستثنا به وسیله ادا و بقیه والمستثنا بخلا و ادا و حاشا خلا و عدا و حاشا یجوز نسبه و جره جایز است که این مستثنا منصوب بشه و جایز است که مجرور بشه پس به وسیله خلا ادا و حاشا جایز است که منصوب بشه و جایز است که مانند قام القوم خلا زيدن قام القوم خلا زيد قام القوم ادا امرا قام القوم ادا امرا قام القوم خشا حاشا بكرا حاشا بكراً قبلا گفته بود که عدات بر سنواند اونایی که حرفند اونایی که اسمند اونایی که متردد بین فعل و حرفند اگر ما این خلا، عدا و حاشا و فعل در نظر بگیریم اون موقع چی میشه منصوب میشه مفعول به حساب میشه فائلش مستتر در خلا و عدا و هاشا میشه ولی اگر خلا و عدا و هاشا رو حرف جر در نظر بگیریم چی میشه مجرور میشه البته این نقطه رو در نظر بگیریم اگر حرفی قبل از اینا اومده بود که فقط بر افعال داخل میشه اون موقع ما فقط اینا رو فعل در نظر میگیریم مثلا اگر ما مصدریا رو بر خلاو بگیم قام القوم ما خلا زیدن دیگه نمیتونیم بگیم قام القوم ما خلا زیدن چرا چون ما مصدریه فقط بر افعال میاد این ما تعیین میکنه که اینجا این خلا چه هست فعل هست این نقطه رو هم در ذهن داشته باشیم پس بحث مستثنا تموم شد رسیدیم به بحث لا این لا که بهش لای نفی جنس هم میگند عمل اینه رو انجام میده یعنی منصوب میکنه اسم رو و میکنه خبر را ولی شرایطی دارد باب لا اعلم ان لا تنسب نکرات بداند که لا نکره ها رو منصوب میکند بغیر تنوین بدون تنوین ولی چه زمان؟ اذا باشرت نکرته زمان که مستقیم نکره بعد شمده بود یعنی بعد از لا مستقیم نکره ومده بود که اسم یعنی فاصلهی بین لا و بین اسم نبود ولم تتكرر و لا هم تکرار نشده بود ولم تتكرر لا اینجا لا فائل هست اینجا لا هست؟ نحو لا رجل فی الدار مانند این مثال که تمام شرایط درش هستن میگیم لا لا ی نفی جنس اسمش مبنی بر فتحه که ایمش رو خواهیم خوان پس لا با چار شرط عمل عمل انه رو انجام میده اول اینکه که اسمش چه باشه نکره باشه دفعه من مباشر باشه فاصلهی بین لا و اسمش نیامده باشه حتی خبر حتی خبرش بین اسم و بین لا و اسمش فاصل نباشه سوم این که خبر همچنین نکره باشه چهارمین که لا تکرار نشده باشه این چهار شرط هستند خب اگر اسم این شرایط داشت مفرد بود منظورم از مفرد یعنی مضاف و شبه مضاف نبود مفرد در بحث منادا و در بحث لای نفی جنس منظور مضاف و شبه مضاف نباشه منظور مصنع و جمع نه ما دو مفرد داریم یه مفردی که در مقابلش مصنع و جمع و یک مفردی که در مقابلش مضاف شبه مضاف در این درس منظور از مفرد مفردیه که مضاف شبه مضاف نباشه اگر اسم مفرد بود اون موقع مبنی بر همون علامتیه که در حالت نسب میگیره مثلا میگیم لا رجول فداری مبنی بر فتحه لا رجول الدار مبنی بر یا لا رجال فدار مبنی بر فتحه لا مسلمین فدار مبنی بر یا متعاید شدی؟ اگر مفرد بود مبنی بر علامت نصب هست اما اگر مضاف یا شبه مضاف بود دیگه با اون فتح خودش یا اون علامتی که جای فتح رو میگیره منصوب میشه مانند لا طالب علم ممقوتون میگیم لا لا نفی جنس طالب منصوب علامت نصب فتحه المن مضاف الیه مقتون هم خبرش مرفو با ذنبه پس دیدی که عمل ان رو انجام میده حالا اگر این شرایط چهارگانه رو نداشت فعلا تو باشر اگر مستقیم اسمش بعد از لا نیومده بود فاصله اومده بود وجب الرفع واجبه که مرفوع بشه و وجب تکرار و واجب که لا هم چه باشه اکرار بشه نحو معنان ده لا فیداری رجلون ولا امرأتون لا فیداری رجلون ولا امرأتون اینجا رجلون که اسم لاحس میبینیم فاصله و مده بهوسیله فدار که خبر یا متعلقه به خبر هست خب در این حالات ما میگیم که چون فاصله بین الله و رجل اومده پس واجب است که رجلون رو مرفو کنیم به عنوان مبتدا. و همچنین واجب است که لا دوباره تکرار بشه لا فید داری رجلون ولا امرأتون فه اگر تکرار شد اگر چی شد؟ یعنی شرایط دیگر رو داشت ولی فقط تکرار شد یعنی فاصله نه بود ولی تك... لا تکرار شده بود جايزة إعمالوها وإلغاوها إنجدك جايزة هم عمل بكوني وجايزة عمل لكوني فإن شئتا قلت أجر خاصي بيقو لا رجل في الدار ولا إمرأة يعني عمل بكوني اسم الله حصابش كوني وجايزة بيقو لا رجل في الدار ولا إمرأة بس أجر أجر أجر فاصلة بود بين الله واسمش إنجا واجبك أجر عمل نکنه و اون اسم مرفوع بشه به عنوان مبتدا اما اگر فاصله نبود فقط تکرار شده بود دو تا میتونه جایز باشه میتونیم عمل بکنه منصوب بکنه و میتونه که عمل نکنه و الغا بشه و مرفو بکنه لا فیها قولون ولا هم انهای نزفون مثالی رو آورده است اینجا بین لا و قول فاصله اومده واجبه که قول رو مرفو کنیم بس این ایرا بشتیم میشه قولون مبتدا. فیها که قبلش اومده متعلق به خبر مقدمه محذوف هست لا هم که بهش میگیم لای محمله دیگه عملی انجام نداده چرا؟ چون بین لا و بین اسمش فاصل اومده دیگه میگیم الان محمل هست غول و دیگه اسمش حساب نمی کنیم میگیم مبتدا هست المنادا رسیدیم به منادا المنادا خمسة انواع منادا بر پنج نو هست المفرد العلم یک مفرد علم منظور از مفردی نه اینکه که نباشه منون اینکه مضاف و شبه مضاف نباشه پس یک مفرد علم مانند یا زید یا زیدان یا زیدون یا محمد یا محمدان یا محمدون این یا محمدون مفردی، منظور المن اللهاز من تعداد نه منظور ما از این لحاظ که مضاف و شبيه مضاف نیست بس منادا بر پنج نوع است مفرد علم نکره مقصوده نکره غیر والنكره الغير المقصوده والمضاف والشبيه بالمضاف این پنج تا المفرد العلم دو النكره المقصوده سي النكره غير المقصوده چهار المضاف پنج الشبيه بالمضاف ببین منادا که بر پنج نو هست منادای مفرد علم و نکره مقصوده مبنی بر علامت رف هستند لفظا مبنیان با و محلن منصوب بله. نکره مفرد علم مانند یا محمدو میگیم یا حرف ندا محمد منادا مبنی بر زمه یا محمدانی محمدانی میگیم منادا چون مفرد علم هست میگیم مبنی بر علف یا محمدون میگیم محمدون منادا چون مفرد مبنی هست مضافشه به مضاف نیست میگیم مبنی بر واف نکره مقصوده همچونین مبنی بر علامت رف هست منظور از نکره مقصوده اون نکره هست که یک شخص معینی رو در قصدش هست مانند این که آورده یا ظالم یا ظالمو اگر شخصش ظالم مشخصی باشه اون موقع بهش میگیم یا ظالمو اینو بهشم میگیم نکره مقصوده یعنی اون مخ... متکلم منظورش یک ظالم مشخصی هست مقصودی در قصدش مق... قصدش کرده اونو در نیتش هست اما اگر نکره غیر مقصوده باشه که منظورش شخصی که معین نیست اینجا منصوب میشه مثلا اگر ما یه ظالم به اینهی رو صدا نزدیم اون موقع میگیم یا من. یا من دع ظلم مثلا ولی اگر شخص معینی باشه میگیم یا مو از کلام متکلم متوجه میسیم که آ این منظورش مقصوده هست یا غیر مقصوده مضاف هم مانند. یا طالب العلم اجتهد مثالیس است که نویسنده آورده است یا حرف ندا طالب از اون جایی که منادی مضاف هست منصوب شده با فتح العلمی که هم هست هر کجا منادا مضاف باشه اینجوری است یا رب العالمین یا رب العالمین یا عالم الغیب نکره غیر مقصوده نکرای غیر مقصوده و منادای مضاف که مثال زدیم و شبیه به مضاف اینا منصوب هستند. شبیه به مضاف اون یک بعد از اون کلمه کلمه دیگی میاد که معنیش رو کامل میکنه مانند یا باردان ابنه، این کسی که پسرش رو میزنه یا حافظا درسو یا طالئا جبلا خوب اینجا مضاف نیست شبیه به مضافه در معنا همانطور که اون مضاف نیاز به مضافن الهداره داره این هم با اون معنیش میشه کامل میشه اعرابش ای البته اینجا نگفته بود عنواش رو گفتی بود ما ایرابشتو رو توضیح داریم خودش بعدا میگه فاعل مفرد العلم و نکره المقصوده مقصوده ف الضم من غیر تنوین میگه مفرد علم و نکره مقصوده مبنی بر ظمه هستن تنوین نمیگیرن نوشته کتاب شما اینو یا زید یا رجل و ثلاثه الباقیه منسوبه الا غیر سته باقی مانده یعنی نکره غیر مقصوده مضاف و شبه مضاف یعنی منادایی که نکره غیر مقصوده باشه یا منادایی که مضاف باشه یا منادایی که شبه مضاف باشه شب اینا منصوبا و را دیگه ای ندارند المفعوله یا هم من اجلی هو الاسم المنصوب الذي يذكر بیانا لسبب وقوع الفعل اسم منصوبی هست که ذکر میشه تا سبب وقوع فعل رو بیان بکنه مثلا من میگم قمت اجلالا لك اجلالا ذکر شده تا بیان کنه که من چرا ایستادم قمتو تو اجلالا لک پس اسم منصوبی از ذکر میشه تا سبب وقوع فعل رو بیان بکنه نحو قال قام زید اجلالا لامر قام فعل ماضی مبنی بر فتح زیدون فایل مرفوع با زمه اجلالا مفعول من عجله یا مفعول لهو چون قام به خاطر اجلالا انجام گرفته اجلالا هم مفعول له پس منصوب که جار و مجرور متعلق به فعل قصد تو که ابتقاء معروفک تو را قصد کردم خاطر طلب کار خیرت معروفت خب میگه اسمی که مفعول لهو واقع میشه باید این پنج رو داشته باشه اولا مصدر باشه دوما قلبی باشه جوارحی نباشه سوه من علت ما قبلش باشه علت فیل چار من در زمان با عاملش متحد باشه یعنی قامه و اجلالا زمانشون یکی باشه پنجمن عاملش فائل و عامل این اجلالا چی باشه یکی باشه پس عاملش با عامل فائل یکی باشه قامه که همون عامل هست خواب ولی این دو مثالی که آورده بود تمام این شرایط رو داشتند. اما این مفعول لهو سه حالت میتونه داشته باشه. میتونه الیف لام داشته باشه، میتونه مضاف باشه و میتونه نه الیف لام داشته باشه و مضاف باشه. چرا؟ چون ما میتونیم مفعول لهو رو منصوب کنیم. و میتونیم با حرف جر سرش بیاریم مجرورش کنیم میتونیم حرف جر سرش بیاریم و چکارش کنیم؟ مجرورش کنیم خب از اون جایی که میتونیم منصورش کنیم و میتونیم حرف جر سرش بیاریم و اون موقع مجرور میشه دیگه لفظن مجرور میشه با حرف جر میگه سه حالت داره الف داشته باشه مضاف باشه نه الف داشته باشه و نه مضاف. در تمام این حالات هم نصب جایز همین که حرف جری سرش بیارن و مجروحش کنند اما اگر الف لام داشت اما اگر الف لام داشت اکثرا اینه که با حرف جر مجرور میشه مثلا ما میتونیم بگیم ضرب تو زیدن تعدیبا من زید رو زدم به خاطر چی ادب حالا اگر ما اینجا بیاییم الف لامش بدیم اون موقع بهترین که مجرورش کنیم با حرف جر زرب تو زیدن لت تعدیب زرب تو زیدن اونجا الفلام نداشت اگر الفلام بشت بدیم میگیم زرب تو زیدن لت یعنی بهترین اینه که الفلامش بدیم تو همین مثال میتونیم الفلامش هم ندیم اما اگر مزاف بود اگر مزاخ بود چه منصوبش کنیم چه مجرورش کنیم فرقی ندارد مثالی رو خود صاحب کتاب آورده زورتو که محبت ادبک زورتو که لی محبت ادبک محبتک مفعول لهو هست در این مثال از اون جایی که مزاح هست هیچ فرقی ندارد که به عنوان مفهول لهو منصوبش کنیم یا حرف سرش بیاریم چکارش کنیم؟ مجرورش کنیم و زمانی که الیفلام نداشته باشه و مضاف نباشه بهتر و اکثر همینه که منصوب بشه مانند مثال هایی که ذکر شدن قام زیدون اجلالا لعمر قصد توکا نه اینکه مضاف هست مانند قام زیدون اجلالا لعمر اینجا نه الفلام داره و نه مضاف هست پس چه شده؟ منصوب هست پس در در بحث مفعول لهو ما میتونیم منصوبش کنیم ما میتونیم حرف جر سرش بیاریم و مجبورش کنیم با تفصیلیاتی که شد منصوب بعدی مفعول معهو است و هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان منفع الى الفعل فعل مأهول فعل اسم منصوب است ذکر میشه اون اسم تا بیان کنک فعل همراه با اون چه شده انجام شده فعل همراه با اون چه شده انجام شده نحو قوله مانند جا امیر و الجيش آمد امیر و جش خب اینجا مسلمه ما میتونیم مفعول مفعولش کنیم یعنی واو واو واه معقرر بدیم و میتونیم حرف عتش قرار بدیم اعراب نصبو در این مثال قرار اعراب معطوفو بش بدیم يعني بگیم جاء الامیر و الجيشو میتونیم بگیم جاء الامیر و الجيشا این جا قرار در مثال استول الماء و الخشربتا دیگه خشبا نمیتونه با ما مثال جاء جاء الرجل و ببین اینجا ما دیگه نمیتونیم کتاب رو معتوف قرار بدیم چون کتاب میتونه راه بره اما در جا از و بکرون میتونیم بگیم جا از و بکرون جا از و بکرن. پس این نکته نحوی رو در ذهن داشته باشیم پس اسمی که بعد از واغ میاد بر دو نوعه منصوبش کنیم به عنوان مفعول معه اونی جایز جائز نیست ما منصوبش کنیم جائز نیست که اعراب عصف رو بشدیم باید منصوبش کنیم مانند مثالی که ذکر شد پس جا الامیرو والجشه جا فعل ماضی مبلی برفت الامیر فائل مرفو بازمه واغوا و معیه الجشه مفعوله معهو منصوب با فتحه مثال بعدی هم چنین هست تا اینجا منصوباتی کتابها اصلا گفته نشدن تمام شدن و از اینجا به بعد دو تا دیگه منصوب مونده بود گفته پانزه تا هستن و اما خبرو کانه و اخواتها. ها اما خبر کانه و اخواتش و اسم انه و اخواتها. و اسم انه و اخواتی ها فقط تقدم از ذکرونها في المرفوعات ذکر اینا در مرفوعات رد شد چرا؟ چون کانه یک مرفوعی داشت یک منصوبی کانه زیدون آلمان اسمش جز مرفوعات بود خبرش جز منصوبات لذا اونجا مفصلن هم مرفوع توضیح داد و هم. منصوب و کسی که میخواد دوباره کانه و اخواتش رو مراجعه کنه باید اونجا بره بر بگرده این نه همچونی این نزدهیدن آلمون اسمش جز منصوبات بود و خبرش مرفوات پس اسمش در منصوبات بحث میشه و خبرش در مرفوات که خبرش در مرفوات به قبلان ذکر شد همانطور که اسم کانه در مرفوات ذکر شد و خبرش اینجا و ولی که طابع آخرین منصوب طابع بود گفتیم تابع رب مستقلی ندارن اگر تابع مرفوعی باشن مرفوعن اگر تابع منصوبی باشن منصوبن و اگر تابع مجروری باشن مجبور باشن که عبارت بودن از نعت و عطف و بدل و دیگه چی؟ توکیت چارتا بودن مانند جا زیدن و امرن رئیت و و امرن مرر تو به زیدن و امرن اینا دیگه در واقع رب مستقیلی نداشتن؟ در مرفوعات منصوبات و مجرورات میشه بحثون کرد یا یک جا بحثون کرد و تمامشون کرد فقط تقدم ها او جا بحثون تمام شد بوانه هنگه به نظر چیه؟ مجرورات یبلینی برای جلسه بعدی تمامی بکنه یبلانی اخوانه کلاس بعدی زنگ بعدی هست خب موفق و پیروز باشید